جاناتان مرغ دریایی نویسنده ریچارد باخ مترجم لادن جهانسوز تصاویر راسل مانسن ویراستار محسن مدیری انتشارات بهجت چاپ دوازدهم 1386 ایس 978 خط تیره 964 خط تیره 6671 خط تیره 02 خط تیره 7 راوی نفر دوم